اللهم كن لولي كل ولي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في hazardous ساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه ارضك تو وآوت وتمتعه فيها طويلا اللهم اجل لوليك الفرج و جعل من انصارهی و اعوانه الله بالله منش شیطان رجیم و اذا سال عبادی انی فا غریب و قجیب و دعوت دعا اذا دعانه فلیست تجیبولی ولی اومنوبی لعلهم یر شدون آیه 186 از سوره مبارکه بقره. هفته گذشته یک در واقع تفسیر فشرده و مجمل و کلی از این آیه شریفه ارائه شد اما ارز کردم چون بسیاری از معارف اعتقادی اخلاقی عملی ما در این آیه شریفه نهفته شده من اجازه میخوام که یک کمی وقت رو به این آیه بیشتر اختصاص بدیم مباحث دیگری رو هم که از این آیه میتونیم ان شاء الله بحرمند بشیم اونها رو هم بهش شی مقداری بپردازیم اون کلیاتی که در رابطه با سوال عبادی انی انی قریب عجیب و, و دعوت اد استجابت ایمان رشد کلیاتی جلسه قبل با توجه به تفسیر علمیزان ارز کردم اون کلی رو فعلا داشته باشیم به صورت یه مقدار جزئی تر که باز به آن مباحث اشاره خواهیم کرد اولین مطلبی که از این آیه ما به صورت یک درس بارز و روشن قرآن کریم سوژه می‌گیریم مسئله دعا یا سؤال از پروردگار عالم هست اذا سعال که عبادی انی وقتی که از تو عباد من سوال از من می کنن. این سوال از من یکی از دوستان هم جلسی قبل ای فرمودن آیا انی از من وجود من، صفات من، انایات من چگونگی؟ زمنی که میتونه آیه معنای عام داشته باشه ولی با توجه به این قید پاسخ فنی قریب این بحثی که جواب میده و تمام شعن نزولی که در رابطه با این آیه شریفه هست که بارها عرض کردیم شعن نزول مگر در یک موارد خاص مخصص نیست مبینه اینو توجه داریم اما قرائن و شواهد نشون میده آیه در این رابطه است شخصی در حضور پیغمبر داشت خدا رو میخون خیلی با صدای بلند و ندای قوی مثلا یا الله یا رب بلند شخصی از پیغمبر پرسید که یا رسول الله خدا به ما نزدیکه یا دوره که اگر من میخوام خدا را بخانم بخوام دعا داشته باشم لازم صدام بلند باشه یا حتما صدا کوتاه باشه که در آداب دعا هم این رو عرض خواهم کرد که بعد روایاتی در این باب وارد شده در چه شرائطی دعا مخفیانه و تنهایی و آرون باشه در چه شرائطی دعا بلند و در جمع و با جمعیت و با حتی با صدایی که بقیه بشنوند و چرا؟ این همه طرش شد حالا عرض می‌کنم در اینجا پیغمبر وقتی مورد سوال قرار گرفت سوال این بود از سعلک عبادی انی میگن به این قضیه بود که خدا نزدیکی که دور ما میخوایم خدا را بخانیم. با دعا بخانیم یا با ندا بخانیم. لذا دعاو و ندا رو فرقی که قائلن میگن ندا خوندن با صدای بلنده اما دعا آمه، اعمه از میتونه بیشتر حتی اون خوندن با حتی ته دل و آروم زیر زبان با خدا حرف زدن هم باشه. که بعضی مواقع لازم از ذکر و یواشکی بگن، حتی دیگران نشنبن که ذکر قلبی بشه. <تصفح> گاهی لازمه نه، ذکر به زبان بیاد. چون در این رابطه بوده فرمودن فعنی قریب بگید من نزدیکم. این در رابطه با دعاست. حالا ما در این بعده در رابطه با دعا غیر از اون سنکتهی که جلسه قبل عرض کردم که باید بهش بحث کنیم دعا تحول و توسل با ساد کردم یعنی اتصال روح با عالم بالای روحانیست حالا تو بحثش میان دعا اتصال به قدرت برتر و پیدایی روح قویتر و سعی صدره سه دعا توجه بیشتر به خدا و بندگی برتر جهت سیر بهتر و برتر و سریعتره. با توجه با اون سه نکتهی که فقط اشاره کردم پایان جلسه قبل و بحث نکردم چهار تا سوال رو این جلسه تر می‌کنم. این چهار سوال میتونه با اون سه مسئله رفت پیدا کنه که حالا باز کنیم بحثو یک دعا چی اصلا؟ دو چرا دعا؟ سه، دعا چگونه باشه؟ چهار، چرا اجابت نمیشه گاهی دعا اصلا چی هست؟ از نظر ظاهری میگیم دعا خوندن پروردگاره لذا در این آیه شریف هم ازا سالکه عبادی انی وقتی عباد من از تو راجب من سوال میکنن که این سؤال راجب چی بوده؟ با توجه به شعن نزول خدا نزدیکه یواشکی صداش بزنم الان فرض بفرمایید بنده یه وقت میخوام آقا رو صدا کنم خواب به اندازه فاصلهی که بین هم دیگه داریم شوید صدایی خیلی بلند لازم نباشه من به اندازهی کیشون بشنوان صداشون میکنم <تصفح> یه وقت شخصی ته کوچه است. من سر کوچه میخوام که الان رد نشه کاری با او دارم مجبورم به اختزای این فاصله تون صدامو بالاتر ببرم بلند صدا کنم لذا وقتی یکی داره دعا میکنه فریاد میزنه حالا عقیدش اینه که خدا دوره با این صدا میخواد بشنبه یا گاهی درد به حدی رسیده که میگه دارم فریاد برمیآورم. آورم و هر حال وقتی میگه بگو انی غریب در رابطه با این خوندن است، یعنی خدا را خوندن دعا خوندن خداست از نظر لغت دعوت که ما میگیم کسی را خوندن دعوت دعا خوند خدا را خوند خدا را خوند یعنی چی این بحث به صورت کلی اول که حالا من از زبان روایات بگم که از خودم اگر این مطالب رو داریم باز میکنیم ببینید ریشه همش قول معصومه از اونا داریم سوژه میگیریم میاییم جلو عنایت بکنید خوندن گاهی به منظور، از خود به او چیزی دادن است مثل اینکه شما یک گدایی رو میخونید آقا بیا خوندن چرا میخوام چیزی بهت بد بدم مثلا این خوندن دعا در مورد پروردگار اینه نعوذ بالله اگر کسی خدا را میخواند خوندن خدا بعد از علم به خداست بعد از معرفت الله معرفت ما به خدا علم ما به خدا این است بی نیاز محضه. کمال مطلقه. مطلق کماله. همه ما محتاج او هستیم. نیازمند اوییم. یا ایه الناس انتم فقراء و الله و الله و حوالغنی و الحمید. او بی نیازه. پس من اگر او رو میخونم مثل اینجور خوندن نیست که آقاوی بیا کمکت کنم مثلا. یا فرض بفرماید خوندنی باشه افراد رو برای همعرضی من در مسئله مثل صدا زدن یک نیازمن که آقا بیا من کمکتو, کمکت کنم رو برطرف کنم خودمو بالاتر دیدم او رو پایین تر ولی اون نسبت به این امرو الان من امکانات مالی دارم او نداره دارم میخانمش بیا کمک مالی بدم، از بالاتر نسبت به پایینتر، گاهی نه هم عرضه من احساس میکنم خسته شدم نیاز به مجالستی مساهبتی گفت و شنودی دارم شما رو حتی در سطح خودم هم میبینم. میگم بیاید بشنید با هم که من حرف بزنیم بیاید این موضوع رو مباحثه کنیم. بیایم این مشکل علمی رو با هم دیگه بگو مگو بکنیم. اینجا خودم از شما بالاتر نمیبینم ولی شما رو هم بالاتر از خودم نمیبینم بینم این در ردیف همین بشینیم با هم یه بگو مگو بکنیم ببینیم این مسئله به کجا میرسه این خوندن همراج به پربردگار عالمسه معناند. خوندن سوم که در عالم مادون الهی به اندازه عالم مادون الهی در عالم اله به حساب خودش مطرح میشه در همین عالم مادون پروردگار بنده توی مشکل علمی گیر کردم شما رو صدا میزنم چون میدونم شما بلدید آقا من اینجا گیر افتادم حل این چیه این خوندن از پایین‌تر بالاتر را برای رفع مشکل خودش تو یک مشکل معنوی تو یک وادی سیر و سلوک اخلاقی دوچار یک گیرهایی شدم. مخصوصا هر چه موضوع مهمتر باشه گیر و اون مشکل مهمتر جلوه میکنه. شما رو رهیافته دیدم. شما رو زحمت کشیده طی طریق نموده می شناسم. لذا میگم دستمو بگیرید صداتون میکنم این صدا این درخواست برای من اعتراف دارم من مندم شما رفتی پس دست منم بگیرید منم کمک کنید این به معنی عالم مادون اله از پایینتر نسبت به بالاتری که اون بالاتر میتواند با این خوندن من به من توجه کنه منو بکشونه اگر گدا کاهل بابد تقصیر صاحب چیست؟ به خصوص اینو انایت بفرمایید؟ به خصوص در وادی معنوی و ارزشهای والای ما فوق ماده فائلی داریم که میتونه فائلیت داشته باشه قابلی داریم که باید قابلیت پذیرش داشته باشه اگر قابل قابلیت نداشته باشه فاعلیت فاعل برای این قابل نیرو هدر دادن است نفل شدن هدر رفتن خدای جهان که فیاض علل اطلاق است خدای جهانی که منبع لطف و رحمت است او به ما یاد میده الان نمونه نمونهاشو ارزم کنم در احکام شرعیش اگر قابل ندیدید فاعلیت رو برای اون قابل بیش از حد قابلیت اعمال نکنید خدا دستور داده یک کلم ناس علا قدر اگر شما در یه سطح بالاتری میتونی حرف بزنید ولی به افرادی برخورد کردید که شش ندارن نکن آخواجون و توانش با حرف بزن باز دستور سریح امام کازم علیه السلام و سلام به شاگرد لایق و ارزندش جناب هشام ابن حکمه در اصول کافی باب عقل و جهل هشام با اغلا بشین با آدمای فهمیده زیرک نشست و برخواست کن ارز میکنه یابن رسول الله اگر افرادی یافتم آدم های ولی این کشش های عقلی و این های ذهنی رو برای دقت و تعمق در امور ندارن چه کنم؟ حضرت فرمود با اینا فقط موعظه کن. این اصول کافیه. یعنی چی؟ اگر حکمت مطرح است، موعظه هم مطرح است. جدال احسن هم مطرح است. ادعو الی سبیل رب بک دل حکمت و الحسنه و جادلهم به هي احسن همین امام کاظم علیه و السلام به همین هشامد نحکم میفرمایند کسی که اهلش هست که حق و قول این کسی که اهل حکمت هست حکمت رو به او ندی ظلم کردی کسی که اهلش نیست حکمت رو به او بدی ظلم کردی یعنی چی کشش نیست قابلیت نیست خود تو هدر نده نیرو تو. نه اینکه که انساک کن، نمیکشه در این سطح نیست. همین امام کازم به این هشام می فرماد. اگر دیدی اون زرافت های عقلی رو نداره به موعظه اکتفا کن، تو باب امر معروف و نحیز من کرد، چقدر امر معروف سفارش شده؟ تا این حد که پیغمبر فرمودم، کیف بکن، ازا فسدت نسائه کن، و فسق شباب کن قیل یا رسول الله ایکون و زالک پیغمبر فرمود چه میشه شما رو یه روزگاری بر شما بیاد که زنها فاسد ها فاسق بشن یعنی جامعه فاتحش خونده است دیگه فرشاب و بیفتی و فسخ و فجور چه میکنه قیل یا رسول الله ایکون و زالک ای رسول خدا همچی چیزی ممکنه بشه قالن نعم و شر رومن زالک فرمود از این بدتر میشه براتون اون چیه؟ ازا رأیتم لا یعمرون بالمعروف ولا ینهون ان المنکر وقتی ببینید امر معروف نمیکنند نهی از منکر نمی نماین. یعنی امر معروف و نهی از منکر انقدر مهمه که ترک امر معروف و نهی از منکر از فسق جوان و فساد زن خطرش بیشتره با همه ی گفتن اگر در امر معروف امید اثر نیست نباید خودتو هدر بدی چرا امید اثر نیست قابلیت نیست اینا همه بحثای ظریفی در مباحث دینی ما شده که به دقت بشه البته اینو تو پرانتز رزم کنم قابلیت جبری نیست یک مقدار از این قابلیت ها به دست ماست تلاش کنیم زحمت بکشیم بخوایم در درگاه الهی مدد بجویم با اون دستوراتی که به ما دادن خودمونو بکشیم بالا به همین جهت مولا فرمودن اگر کسی دو روزش یکسان باشه مقبونه امروزش بدتر از دیروز باشه ملعونه یعنی میتونید خودتونو عوض کنید بیاید بالاتر حالا اگر شما در عالم معنا طبق این دستوری که خدا به ما میده طرف نخواد قابلیتشو تغییر بده نخواد حضیرش رو در سطح بالاتر ببره شما الان اون ارزش های بالاتر رو بهش نمیتونی بدی اگر دادی ضرره او باید شرایط گرفتگی رو در خودش ایجاد کنه تا بتونه بگیره حالا اگر این شرایط رو داره در خودش آمادگی و قابلیت برای بهر مندیه از اون سطح از شما داره شما بخوای امساک فیز کنی قویهه از طرف پروردگار فیض اینجور ادامه داره قابلیت گرفتن این فیض در چه سطحیه در چه مرحلهیه دعا یک ارزش واقعیش اینه یعنی خدا من به این شناخت رسیدم کمال مطلق توی من لغت ندارم و. از این بهتر لغت دارید جاش بذارید مطلق کمال بالاتری که بالاتر معنا نداره کاملی که نمیدونم چی بگم دیگه به هر حال الفاظ اینجا قاصره میفهمم کمال مطلق توی مطلق کمال توی غنای محض توی غنی حمید توی جامع جمی اصفات ارزنده توی و بس اینو میفهمم خودم فقیرم بیچارم هر کسی که تصور کند من کسیم خود این دلیل بر بدبختی و بیچارگی نادانیشه پیغمبر با اون عظمت فریاد بر می دارد. الفقر و فخری من افتخار می‌کنم که خودمو رو بیچیز می و نیازمند و فقیر می‌دونم. همه فقیریم نیازمنده بود حالا که فقیریم، قدیت قلدوری و منیت نمیذاره بگم آی کسی که شما امکاناتشو داری من ندارم دستمو بگیر حالا تو بادی علم مثال بزنم بنده میام کتابو بخونم نمیفهمم آیه رو نگاه میکنم گیجم حدیثو میبینم دوچار مشکلم شما زحمت کشیدی بلدی توازو احساس نیاز لازمه تکامل اینه که بگم آقا شما زحمت کشیدی تو این کار دست هم بگیرید این آیه چی میخواد بگه منظور این حدیث چیه امام علیه السلام اینجا چی میخوان بفرد اخیه من شما, شما رو قبول ندارم لذا زمینه درخواست از شما هم خب در منده ایجاد نمیشه دعا اولین مرحلش تزلل در پیشگاه خداست. دعا چیست تزلل در پیشگاه خدا کوچکی، هقارت گدایی خود رو پیش خدا امضا کردنه خدایا من کیم اگه تو علم چیزی دارم تو خواستی یه لحظه بخوای عنایت تو برداری همه چی یادم میره تو قدرت یه ذره لخته خون میاد یه تیکه رگو میگیره نصف بدنم فلج میشه یا مرگ مغزی میگیرم میافتم بدن داره کارشو میکنه نه زبون میتونه حرف بزنه نه گوش میتونه بشنوه نه دست میتونه تکنبه چه خبره به چی بنازم به ثروت مینازید به جانت مناز که به طبی بسته است به مالت مناز که به شبی بسته است هر یک از این دارایی ها دعا معناش اینه یکیش در پیشگاه خدا بگم خدا من میفهمم هیچی رو مالکش نیستن هیچی رو. همه دست تو. اگه دعا رو بفهمیم معنای عرض کردم خواستن بالاتر از پایین‌تر که دعا معنی دعای الهی نیست خواستن هم عرض که نیست خواستن پایینتر از بالاتر ولی پایینتر از بالاتر در این عالم ممکنه بنده در یه چیزی از شما پایین‌تر باشم در یه چیزی از شما بالاتر باشم در اون چیزی که من از شما ترم شما رو صدا میزنم در اون چیزی که شما از من پایین‌ترید شما منو صدا بزنید ولی بین ما و خدا به چه معناست؟ اگه بفهمیم لذا میگن دعا باید از روی معرفت باشه لقلقه زبان نباشه دعا معرفت باشه چیه؟ اصلا غیر از او هیچه همش اوست همش... لذا اگر من این تزلل را این کوچگی را این هقارت را در مقابل خدا پذیرفتم به همین جهت گفتن در دعا دستاتونو بالا بگیرید عالی ترین جای نماز یکی قنوت یکی سجده و خواستن هر دوتا رو باش بازی کنن در فقه مقابل فقه امام صادق علیه السلام قنوتی که عزف کردم سجده چه بازیات توش در آوردن اگه بشه میگم انشاءالله عالی ترین قسمت نماز یکیش قنوطه که دست و معمولا گدا دستشو دراز میکنه مخصوصا من اینن روایت دیدم در آداب دعا انشالله بحث میکنیم امشب نه در آداب دعا چندین دستور از معصومه دعا میکنی با وضو باش با بسم الله شروع کن رو به قبله بشین اول حمد خدا بگو بعد درود بر اولیا و انبیا بفرست بعد ذلت خودت رو نشون بده دستات رو میتونی بالا بگیر سنگای وقت دیدید آدم حتی شاگرد نسبت به استاد خب دیگه ما عمرمون الحمدلله تو کلاس برین شده و خودمون دیدیم قسمت عمده ما تو کلاس بوده حالا یا با اساتیدی که به ما درس کپتن یا احیانا ما رو وادار کردن بریم کلاس درس بگیم آدم بعضی وقتا می‌بینه شاید سوالی هم که داره می‌کنه و همچی با یک جستی با یک تبختوری انگار می‌خواد به استاد بگه که ای زمین برقامت قامت والام نگرد زیر پای کیستی بالا نگرد ببین من اومدم تو کلاس تو تا... چه خبر آقا چه خبره نشان یه از است... همچین با یه توختوری چه میشه جوابش مثلا خیلی خوب آقا جون تو هم بادت خالی میشه تو هم این دم از دماغ فیل افتادن تموم میشه ولی تا دیر نشده سعی کن افتاده بشی افتادگی آموز اگر طالب فیزی هرکز نخورد آب زمینی که بلند است پر رفتم خدمت بزرگی یه چند لحظه ای گفتم درد دل کنم دلم گرفته برام حرف بزن فرمود خدا یه مشکلی برای خودش پیش اومد بود برام ترکه گفتی هم چه مشکلی پیدا کردم من متأثر شدم یکی از بزرگانه که متأثر شدم بعد گفت که نه چه نراحت شدی من اینو لطف خدا میدونم گفتم چرا گفت من سکر نمی کردم منی که کارم اینه توی این موضوع مشکل پیدا کنم خدا خواست به من نشون بده خودت توی این موضوع مشکل پیدا این درس خداست برای من به هیچ چیزیمون نمیتونیم بناسیم همه چی دست روش لذا یه وقت از داره با یک توختری آقا این سوال جوابش چی میشه یه وقت میگه ما در مقابل خدا به من خدا گفته نشانه حالا مادیشو مثال بزنم یه وقت بنده نیاز مادی دارم تازه با یه گلدوریم آقا شما میشه داری کمک مالی به ما بکنید من خیلی افتادم البته اینجا میگه تواضع زه گردن فرازان نکوس گدا اگر تواضع کند خوی اوست حالا اگر نشانه گدایی چیه آ تو رو خدا کمکم کن میگه در مقابل خدا دستاتو بگی خدا محتاجم فقیرم تو بخوای نظر انایت به من نکنی من هیچم این مثالو گفتم ولی بذم بازم بگم شما الان برقو در نظر بگیرید حسینیه آجیان نه تهران نه دنیا بنید افق دیدتون رو از حسینیه حاجیان ببرید تهران ببرید دنیا چراغا روشنه رو فنکویلا کار میکنه یخچالا کار میکنه کامپیوترها کار میکنه دستگاه های گوناگون برقی تو ها تو رادارها تو چی تو چی کار دنیا رو در نظر بیارید یک آن در همه دنیا برق قطع بشه. چراغا همه چی کامپیوترها حالا شارژم ندشته باشه همه چی تمام تشکیلات برقی و و چیه؟ قبول داریم در دعا با کی داریم از کیو میخونیم؟ خدایی که اگر نازی کند از هم فرو ریزد یک لحظه نظر انعایتشو پروردگار از هستی به ما و هستی به خود ورداره هیچی نیست و وقت انسان اینو بفهمه در مقابل خدا تزلل داره لذا و دست نگیره بالا گدائیشو نشون میده تو سجده بالاترین جای بدنش على ظاهر پیشانی دیگه رو پسترین چیز خاک میذاره به خاک افتادم در مقابل تو من ارزندام کنم اون وقت پس دعا چیست؟ تزلله دعا در مقابل خدا خود رو نشون دادنه. لذا در زبان روایت اومده دعا عبادت چرا؟ چون عبادت یعنی عبودیت و بندگی دیگه هر چه بنده معرفت بندگیش بیشتر باشه بندهتر هست یا نه؟ و هر چه معرفت بندگیش کمتر باشه ممکنه تظاهر بندگیش زیاد باشه، واقعیت بندگی نباشه. لذا دقت بفرمایید. این اصول کافی، جلد دوم، کتاب و دعا اولین بابش، فضل و دعا و لحص علیه. فضیلت دعا و تحریک و تشویق بر دعا کردن این آیه شریفه سوره مؤمن آیه 60 این آیه رو امام باقر علیه السلام خوندن بعد اینجوری تفسیر کردن عن زراره عن ابی جعفر ما سلام قال زراره از آقا امام باقر علیه السلام برای ما اینجوری نقل می‌کنه ان الله عز و جل یقول خدای بزرگوار اینگونه فرمود سوره مؤمن آیه 60 ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان استکبار باب استفعال از ماده کبر به درستی که کسانی که تکبر میورزند خودشونو بزرگ میبینن عن نسبت به عبادت ما از اینکه بخوان عبد ما باشند، بنده ما باشن خودشونو عبد ما ببینن اه ما که در شهن ما نیست ما بالاتر از یارپاییم یستکبرون انعبادتی سید خلون جهنم داخرین اینها رو در اوج ذلت و در اوج خاری میبریم جهنم سید خلون طول نمیکشه خیال میکنید که این چند ساله عمر دنیا در مقابل عالم هستی چیزیه گفت پشه کی داند که این باغ از کی است در بهاران زاد و مرگش در دی است یا در پی است یه پشه ای که بهاری به دنیا اومده دیما هم از دنیا رفته یه مدت کوتاهی توی این عالم بوده حالا این میخواد باغ رو برای من تحلیل کنه تفسیر کنه کی گفت پشه ای در کنج و اتاقی تاری تنید بچه‌ی عنکبوت توی این کنج به دنیا اومد همینجام چند روزی زندگی کرد مرد و از بین رفت بعد فرض کنید با این انکبود ما بتونیم حرف بزنیم خب دنیا رو برای من تعریف کن چی میگه دنیا یک حسینی هست چند تا کنج داره در یک کنجی هم من به دنیا اومدم در اون کنجم یه مدتی زندگی کردم مردم تموم شد همینه خوی این حسینی رو دیدی بیشتر ندیدی این حسینیه عضو کوچکی از مجموعه بزرگتر این ساختمون، این ساختمان عضو کوچکی از مجموعه بزرگتر این شهر این شهر عضو کوچکی از مجموعه بزرگتر این کشور این کشور عضو کوچکی از مجموعه بزرگتر این قاره این قاره عضو کوچکی از مجموعه بزرگتر زمین زمین عضو کوچکی از مجموعه بزرگتر منظومه شمسی منظومه شمسی عضو کوچکی از مجموعه بزرگتر کهکشان‌ها کهکشون کشون یک موجود از موجودات عالم وجوده چه خبره؟ اگر کسی افق اونایی که دیدشون کوتاهه بزرگی برای خودشون قائلن ولی وقتی افق دید گفت مورچه افتاده بود توی در آب داد میزد دنیا را آب برد گفتن دنیا را آب نبرد گفت منه در آب میبره برد گفت تو خیال کرد دنیا خودی چی؟ یا ماهی میگه به دریا ماهی دم از خدا زد به کوی حق در چونو چرا زد که چون دریا برایم آفریدی خط خشکی چرا گردش کشیدی مرا هرگز به خشکی نیست حاجد برون از حاجد چرا گشته از خلقت نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده محیا توی چون ماهی و دنیاست دریا برای تو نشد دنیا محیا توی فردی خیال کردی فقط لذا کسی که در افق دیدش نسبت به این عالم نگرش پیدا میکنه در سطح وسیعتری همه هستی به ما هوه هستی هستی مطلق وجود به ما هو وجود در کل عالم منهای خدا چیه؟ یکیش منم حالا من در این عالم دعا داره به من اینو یاد میده در مقابل این خدا کبر نورز در مقابل این خدا خودتو نگیر در مقابل این خدا منم نکن ممکنه کسی بگه مگه میشه بله یه تکبر نظری داریم یه تکبر عملی داریم تکبر نظری چیه دام میخواد در دو رو از بیم به دارم دقت کنی دعا چیه دعا تکبر نظری در مقابل خدا را میبرد تکبر عملی در مقابل خدا را میبرد تکبر نظری چیه تو فکرم بگم من کسیم تو مرحله ذهن میخواد بگه فکر کن تو کی؟ تو ممکن الوجودی سیاه روی زه ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله و عالم در دو عالم ممکن الوجودی ممکن بیواجب هیچ از تو هیچ پس چیه که میگی؟ این نظر عملی نه خیلی خدایا یا برم چکرت هم ما که قبولت داریم تو همه آخدا شطور دیدی ندیدی دست ما رو ما بله ارادت داریم باشه اما عملا در مقابل خدا تکبر دارم چطور خدا میگه بنده من نماز بخان من نمیخونم یعنی چی؟ یعنی خدای تو میگی من میگم نه پس گفته من بر گفته تو غلبه پیدا کنه این چجور بندگی در مقابل خداست خدا میگه به نامهرم نگاه نکن نه خیر خدا میخوام نگاه کنم دلم میگه نگاه کن خدا میگه غیبت نکن دروغ نگو منیت نداشته باش مردم آزاری نکن تو میگه دلم میخوادیم کارا رو بکنم تکبر در مقابل خداست دیگه چه تکبر به صورت نظری چه تکبر به صورت عملی دعا تا رو داره حالا تفسیر امام رو از آیه بگم برگردم به این حرف اِنَّلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُ عبادتی سید و خلون جهنم داخرین اونهایی که تکبر میبرزن از اینکه که عبد من واشن عبادت منو به جا بیارن خیال کردنی 70-80 سال عمری که تو دنیا بهشون میدیم بابا طولی در مقابل اصل عالم وجود چیزی نیست در مقابل حقیقت آلمی که شما بعد از مرگ علال ابد در این آلم باید وجود داشته باشید و اون مراحل رو طی کنید این چیزی نیست اصلا اون وقت این به زودی اونجای میگه داخرین تو جهنم میدازیم به شکلی که در اونج پسلی و ذلت قاله کی قاله امام باغر علیه السلام امام باغری که این آیه شریفه رو میخوندن فرمودن خوبت دعا این دعا یستکبرون عبادتی یعنی تکبر میورزن از اینکه دعا داشته باشن چرا دعا گفتن عبادت رو اینجا زیر مجموعه دعا آوردن. خب یه وقت من نماز میکنم این عبادته یه وقت دست به آسمان بلند میکنم ای خدا خدا قسمت کنه معرفتش هم بده قدم لرزه به اندامش میاد همه جا ولی مخصدن تو مسجد کوفه ای دعای امیر المؤمنینو با معرفت آدم به زبان بیاره مولای مولا انتل غنی و انال فقیر و حل یرحمل فقیر الا الغنی مولای مولا انتل غوی و انال زعیف و حل یرحمل زعیف الا الغوی مولای مولای انت الدلیل و انال متحیر و حلیر حمل متحیره الا الدلیل مولای مولای انتا الخالق و انال مخلوق و حلیر يرحم مخلوقه الا الخالق این دعاست نماز عبادته هر دو رو امام علیه السلام در قالب دعا آوردن در این آیه اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْوِرُونَ اَنْ عبادتی چون عالیترین ترین شکل عبادت در دعا تجلی میکنه نمازم دعاست به همین جهت سلات بهش میگن حقیقت شرعیه شده از نظر علم و اصول به این معنی خاصی از دعا که شبان روز واجبه وگرنه در دعا شما دقت کنید میگه امام علیه سلام فرمودن دعا و افزلل عباده اد دعا دقت کنید و افزلول عباده ادعا اصول کافی جلد دوم صفحه چار سد کتاب و دعا. اولین باب حدیث شماره یک قال ادعا یستکبرون ان عبادتی عبادارن یعنی دعا نمی کنن. و افزلول عباده ادعا قلتو اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَعَوَّاهُنَ حَلِيم از امام پرسیدم این که حضرت ابراهیم علیه السلام سوره توبه آیه 115 حضرت ابراهیم رو خدا میگه اواح بود و حلیم بود این اواح در کتاب امروز مجددن باز نگاه کردم دیدم بسائر و درجات حدیث از امام صادق علیه السلام یه بار من فکر کنم شبای قدر بود اشاره کردم فرمود آه اسمی از اسماع است. ابراهیم اوّاح بود خیلی آه میکشید آه اینو درست کنید این حدیث اینجا لاله تو ان ابراهیم الا الله حلیم ابراهیم خیلی آه از اعماق جانش میکشید در این حال حلیم بودا نمیبرید سبور بود این یعنی چی تو همین حدیث امام فرمود الاوا و دا دعا. این داس چون یک وقت هست طرف از اعماق جانش توجه به خدا میکنه با زبان قالش میگه آی خدا غیر تو هیچ یه وقت زبان حالش میگه آه خدا آهی که مثل ابراهیم از نهادش برمیخیزه زبان قال ابراهیم نیست زبان حال ابراهیم لذا وقتی که حالا حدیثش خدا اگر خداخواست براتون میخونم طولانی امشب بخوام بخونم میذارم جلسه بعد انشالله که با بحث مناسبت اون قسمت بشه قضیه ابراهیم میخونم ولی این مقدار رو میگم ابراهیم اومد خدمت ابراهیم الان تو منجنیق حتی حدیث داره تو هوا عین نه تو هوا یعنی ابراهیم از منجنیقش پرتاب میشد به طرف آتش تو هوا جبرائیل جلوشو گرفت کاری میتونم بکنم گفت علمه به حالی یکفی مقالی نگفت قال گفت حال علمه به حالی مگه حال منو نمیبینه حالم چه حالیه یکفی مقالی یعنی از اینجا ببینید دعا جنبه نظریش ولو به زبان نیاد اگر دعا باشه تزلل هست کوچکی هست اظهار نیاز هست در پیشگاه خدا خدا هیچ هم من کیم به خصوص که گاهی خدا دوست داره یه جاهایی شما دیدید در سیستمهای تعلیم و تربیت اینا وارد شده معلمین این کار رو بکنن اینک ایبی نداره این در مقام کبر و غرور یا کوبیدن نیست در مقام تعلیم و تعلم شاگرده معلمی میبینه یه شاگردی مقروره عزیز من توازه داشته باشه باید متوجه سلام دلت متوجه بشی برای اینکه به طرف بفهمونه کتابو وا میکنه یه سفر رو میده میگه اینجا رو بخون طرف تا میاد بخونه گیر میفته خودش متوجه میشه من عجب دعای داشتم خدای کریم از همه مهربان‌تر گاهی میخواد گوش منو بکشه تو یک اموری چنان گیرمون میندازه میبینه بفرموده مولا تو این دعا انت دلیل و, و انل المتحیر خدای متحیرم نه علمم نه فکرم نه ثروتم نه دوستانم نه رفقایم هیچ که نمیتونه کاری برام بکنه اینجاست که میگه خدا فهمیدم هرچه هست و نیست توی غیر از تو همه چی. اینجاست که آه از حالش حکایت میکنه علمه به حالی یکفی ان مقالی پس دعا چیه؟ دعا تزلله دعا کوچکی خود رو نشون دادنه خوب حالا کوچکی نشون دادن چه ای داره هنوز ادامه داره باید بگم دعا چیست یکیش گفتم دعا عبادته دعا وسیله غربه حالا بحث میکنیم دعا دفع موانع مسیر تکامل میکنه دعا کمک با خودش میاره عامل موثر میاره حالا دقت کنید اینا مثلا شما الان در مسیر تکامل یک دعا تزلل تزلل ضلت کوچکی در مقابل کی در مقابل حق هر کسی در این عالم دقت کنید همین ظاهر دعا یه چیز ساده گرفتیم ببینید چه کلاسیه در فرهنگ قرآنی که اگر به ما گفتن عفظلل عباده ادعا عبادت برای چیه؟ برای قربه حد دیگه برای تکامل منه عفظلل عباده دا حالا همین دعا رو ببینید در مسیر تکامل چه میکنه تا کسی در مسیر تکامل خودشو کوچک نبینه تا کسی در مقام تکامل افتاده نشه عوامل مؤثر تکاملیش رو نمیپذیره. خب تکبر در مقابل خدا، تکبر در مقابل اولیای الهی، تکبر در مقابل برجستگانی که نسبت به خودتون بالاترن. ابلیس اندلذین یستکبرون عبادتی راجع ابلیس ابا واستکبر. کبر ابلیس چی بود؟ سجده کن. آخیر انا در مقابل امر پروردگار این عبا که استکبار میشه تزلل نداره تزلل که نداره رنده میشه لذا برادر و خواهرم یک درس دعا اینه لقلقه زبان نباشه دعا را توجه داشته باشیم یه ساعتی از شبانه روزمون اختصاص بدیم به دعای معرفت یک گوشه خلوتی بین خود و خدا خلوت کنیم لذا لقلقی زبان و عبارات تنهام نمیخواد خدا امواط همگی رو رحمت کنه بچه بودم مرحوم بر پدرم برام داستان میگفت ای همیشه تو گوشم منده گفت ادهی سوار کشتی بودن تو یک دریایی داشتن سفر میکردند. دریا متلاطم شد همه داد و فریاد و آه و نالب و خدا پیغمبر یه پیرمردی دیدن گوشه کشتی آرام یه گوشه نشستی هیچ تکون نمیخوره اومدن گفتن پدر جون تو هم دعا کن گفت چشم دست به آسمان بلند کرد. گفت گفتی نکن نکردم میگم نکن نکن دریا آرام شد. کشتی راحت به سااح اینا اومدن جلوتر خدا این ذکر کی گفته بود؟ این دعا چی بود؟ گفت نه چیزی نبود. من به خاطر شما وگر نه خودم تسلیم بودم پسندم اون چرا جانان پسندن اما دیدم شما خیلی متلاطه گفتم خدایا چی گفتی نکن نکردم میدونی راست گفتی نکن من نکردم یه بار هم من میگم تو نکن خدام نکن این یعنی از اعماق جان توجه که توی تو بخوای هر کاری رو و من هم در راستای غر دعا پس میتونه در در مقابل او چی خب تو عمل چی؟ نظر به عمل میکشه. اگه در مقابل او هیچی، پری روز یک دوستی اومد دانشگاه گفت فلانی من راجع به نمازش گال دارم. بگره به قدری منطقی بود. به قدری استدلال پذیر بود که من کیف کردم که آدم اینا رو که می بینه واقعا حاضر پاشونه ببوسه. که آدم تابه منطقه. قدم نماز رو نمیتونم بپذیرم. دینو قبول دارم، قرآنم قبول دارم. حالا چیش اشغام خب مردنم رکوع ببرم، سجده برم خب من با خدای خودم مثلا راز و نیاز میکنم حالا چرا وضو بگیرم، دولا و راست بشم؟ گفتم خب ما تا یه مرحله با هم مشترکیم از مشترکات شروع کنیم، قبلش نرم. شما خدا رو قبول داری، با عاشقش. راست هم میگفت، روح نمیگم. ان برش مشتبه شده خدا رو باخیلی، قب... قرآنم قبول دارم. گفتم حالا از شما یه سوال میکنم. عبادت که میگی لازم نیست دلاب و راست بشم همین که من با خدا خلوت میکنم تو اتومبیل با خدا حرف میزنم سر کارم عاشقانه خدا رو در نظر میگیرم خدا رو در نظر میگیرم مثلا به مراجعه کنندام ظلم نمی کنم. اینا عبادت میشه یا نه گفتم من نمیگم اینا عبادت نمیشه ولی اون عبادتی که خدا از تو خواسته خدا بهتر میفهمه یا شما گفت نه خدا بهتر خب اگه خدا بهتر میفهمه چرا خدا گفته نماز بخون که ومر راکهی رکوتو رو هم اینجوری انجام بده سجده تو اینجوری انجام بده شما میگی من به سلیغم اینجوری میپسندم بندم ممکنه به سلیغم یه جور دیگه بپسندیم ما هر کدوم سلیغهای مختلف میتونیم داشته باشین ولی قبول داریم خدا بالاتره خدا گفته این کار رو بکن یک کمی فکر کرد زد سیره گریه یه آدم حد زد زیر گریه دیدم عشقاش اومد با صدا گفت من اصلا توجه به همین مطلب ساده نداشتم خدا از من میگذره نه من خدا اگه او گفتی اینجوری نماز بخون از من بهتر میفهمه چشم ببینید؟ حالا مجملش عرض کردم یک کمی بستول کشید تا اینجا رسید مخواهم این عرض کنم اگر من در دعا یعنی خدا من هیچ اون تحلیل رو دقت بکنید، بالاتر نسبت به پایین تر میخونه دعا نیست هم عرض از هم عرض صداش میکنه دعا نیست پایینتر بالاتر رو میخونه پایینتر و بالاتری که از این طرف هیچ هست صفرم نمیتونم بگم از اون طرف هر بگم از او بالاتره حالا این میخواد او رو بخونه وقتی او رو بخونه یه همچون نظری پیدا کرد او میگه بنده ی من اینجوری باشه میگه چاش لذا یک راز بسیار قشنگی است که انسان کامل رو میگن عبدالله در زیارت جامعه شما یکی از الغابی که ایمر صدا میزنید اونها رو میگید که عباد الله نمیگید عبدالرحمن نمیگید عبدالرحیم درست عبدالرحمن هم هستن عبدالرحیم هم هستن چون الله اسم ذاتی است که جامعه جميع صفاته بقیه هر کدوم اسم صفتی است که به مناسبت صفتی عبد الله می شود یعنی ابد دو نکته رو دقت کنید اینجا یک عبدی است که تمام تجلیات او را عبودیت میکند نسبت به همه تجلیاتش خاضعه عاشقم بر لطف و قهرش من به ای عجب من عاشق و این هر دو ذذ و هر جهت او من عبدالله اگه عبد رحمان باشه فقط به جهت رحمانیتش عبودیت میکنه اما عبدالله هست این یک دوم عبد یعنی آبدی که به قرب حق میخواد برسه قرب صفاتی یکی قرب این صفت داره یکی قربان داره عبدالله هست. یعنی قرب ذات الهی که جامع جمعی صفاته به معنی انسان کامل که همه جهاتش لذا به ما گفتن در نماز بگید اشهد و انم محمدن صلی الله علیه و رسولم عبده و رسوله است یعنی در مقام قرب چنو عبد الله در مقام قرب الله رفت بالا این با دعا میشه انزینهیه تکفرون ان ادتی سید خلونه جهنمداخلین قال باغ و عليه سلام ح دعا و افضل ادده از دعا قلت و ان ابراهیمه لوا حلیم قال اووا دعا. خب این مقدار حیث رو میخوام بحث میذارم جلسه بعد دعا چیست؟ خ؟ کوچکی در مقابل کمال مطلق که زمینه اتصال به کمال مطلق رو برای قرب پراهم کنه دو دعا وسیله قرب است حدیث شو میخونم توضیحش بمونه انشاءالله جلسه بعد همین کتاب حدیث دوم قلت لعبی جعفر علیه السلام به امام باقر علیه السلام عرض کردم ایل عباده افزل وجوب عبادت بالاتر است فقال ما من شيء افضل عند الله عز وجل من ان يسال ويطلب مما عنده وما احد اوبقذا الى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده هذه فقط ترجمه میکنم با این حدیث دیگه فقط در حد درست کردم اشاره که دیگه حالا بحث بمونه برای یه جلسه بعد حدیث چی میگه؟ به امام باغر گفتم آقا جون کدوم عبادت از همه بالاتر فرمود هیچ چیزی در پیش خدا بالاتر از این نیست که خدا مورد سوال قرار بگیره ازش بخوای درخواست کنی و یو طلب مورد طلب قرار بگیره ازش طلب کنی اون چی که پیششه و ما احد عب هر دی در پیشگاه خدا مبغوظ قرار گرفته نمیشه از اون کسی که استکبار میبرده از عبادت یعنی سوال نمی کنه سؤال بپرسید از خدا بخواید از خدا بخواید یعنی چی؟ حدیث ششم از این باب رو بخونم عرض کردم دیگه بحث میمونه جلسه بعد حدیث ششم رو دقت کنید سمیعت و عبا عبدالله علیه السلام یقول سبکت حدیث که امام زیادی این رو شنیدم که امام صادق می فرمودن علیکم به دعا دعا کنید دعا کنید شما رو به دعا لا لَا به مثل هیچ چیزی به اندازه دعا شما رو به قربه حق نمی رسونه فَإِنَّكُمْ لَا تُغَرَّبُونَ بِمِسْلِه فَإِنَّ به درستی که شما کم به وسیله چیزی مثل دعا به قربه حق نمیرسید نمی رسید حتی یه چیزای کوچولو رو هم رهاش نکنید اون هم با خدایتون در میان بذارید از او بخواید ان انتدعو بها این صاحب الصغار و صاحب الكبار همونی که بزرگار رو به شما میده کوچیکارم هم همون میخواد به شما فکر نکنید این کوچیکا که از بقیه بر میاد اینو می دونیم سراغ بقیه اینم دعا نیست قربیم علی اینشاء الله با اسیم این حاجت های کوچیک از بقیه هیچ که منهاهای خدا هیچی ازش بر نمیاد خاطر دیم هیچ که منهاهای خدا هیچی ازش بر نمیاد مگر همون خدایی که کبیر رو برای شما یا خودش روا کنه یا به کسی دلش میندازه بیاد براتون انجام بده صغیرام همون خدا یا خودش انجام میده یا کسی رو میفرسته که براتون انجام بده لذا این معنا در دعا با یک اشاره دیگه وقتم داره تموم میشه بگذارم ان برای جلسه بعد حالا خیلی کار داریم رو بحث دعا باید بریم جلو فعلا یه مقدار بحث کردم دعا چیست یک دعا تزلله تزلل چه اثری داره دیدیم دو تا دعا, دعا وسیله تقربه دعا ما رو به خدا نزدیک میکنه ولی دعا باشه مرحوم احمد امین اراقی غیر از احمد امین مصری این دوتا اسمشون مشترکه از زمین تا آسمون با همدیکه فرق دارن اشتراکشون اشتراکه لفظیه نه معنوی در لفظ مشترکن اما این کجا و اون کجا میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانست مرحوم احمدم این اراغی استاد فیزیک دانشگاه بغداد بود مجتهدم بود که چلواری بود مجتهد بود استاد فیزیکم بود جز فیزیکدان های قوی هم بود بسیار آدم اخلاقی و متدین وارسته بنده که ندیده بودم ولی استاد من با ایشون رفیق بود برای ما گای خستیات ایشون رو نقل میکرد خیلی از بزرگی روح این مرد میگفت ایشون شش ج فارسی ترجمه شده به نام تکامل در اسلام و همین نام هم ترجمه شده کتاب خیلی جالبیست تو یه حرفایی که ما میخواییم بزنیم تو جلد سوم بوم میشه یادم میاد مواردی از این نمونه نقل میکنه یکیش اینه میگه من یه استاد فیزیک صاحب نام علم جدید استاد فیزیک، دکتر فیزیک علم قدیم مجتهده به آدم معمولی که نیست بخوام همین جوری مثلا بعضی چیزای سرسری سطح شیعه است. از کردم بله از بزرگان مجتهد شیعه است. از بزرگان به اصطلاح ارزنده آدم خدا رحمتش کنه آدم بزرگی بود ایشون نقل میکنه کتاب چاپ شده میگه من در بغداد یه آقایی رو میشناختم هر سال حج میرفت ولی دیرتر از همه زودتر از همه برمیگشت فهمیدم عادی نیست یک قضایه داره خود مروم احمد امینم توی حرفا بود گفت اتفاقا تا من بیام کنکاشی کنم چیزی دستم بیادی فوت کرد سال اول فوتیشون پسرش همی کارو کرد منتظر بودم از مکه اومد رفتم دیدنش گفتم من فلانیم گفت میشنسم دم تو رو خدا میخوام ببینم چی بود پدرت هر سال اینجوری میشود و شما هم امسال این کار کردی گفت واقعا من میخوام به شما بگم. دلم میخواد. من از کار پدرم سردر نیابردم می دیدم کارهای غیرعادی داشت اما امسال مثلا فرض کنید چار روز منده به ایام خاص عمل حج پدرم می رفت نصف شب دیدم در خونه ما در زدن. اومدم دم در مدر. دیدم یه بنده خدایی با یه مرکبیه گفت من بودم که هر سال باباتو می بردم مکه و بر می با علوم غیرعادی، با روال غیرعادی، دوست داری؟ گفتم باشه گفت من اون سواره بر ترکش کرد و یه وقت دیدمش که تو آسمونا دارم سیر میکنم نفهمیدم توی بیابون لمگزره اومد پای من آورد پایین گفت من از اممال ابلیسم از دست های من وسواسل خناس اللذی یو وسبسو فی صدور ناس منل جنت و ناس من از اممال منحرف کننده اجنه مزدوران شیطانیم اگر خدا بخواد من مدتی تو این زمینه یادداشت‌های تهیه کردم اگه زنده مندم گذاشتم برای ماهرم ازون که تو این زمینه بحث کنم وسوسه جن وسوسه ناس در دل انفعال نفس فائلیت پروردگار در معرفت در عمل چگونه میشه حتی این بحثی که این روزا خیلی دامن میزنن که مگر فاعل خدا نیست نفس ما منفعل نیست معرفت با هم خدا نه باید بر مبنای فائلیتش در نفس من القا کنه که من منفعل بشم هر طورم خایم زد انشاءالله شاء به این حرف رغب پیدا میکنه ولی باید بحث بشه میذارم اگه زنده بودیم اونجا این بحث رو مرحوم احمد یه اشاره میکنه میگه ایشون گفت که من از اونا هستم و پدرتو هر سال میبردم حالا اومدم شما رو ببرم ولی اینجا اگه منو سجده کردی میبرمت حج رو برمیگردونم نکردی راحت میکنم همینجا بمیری بابا به با من سجده میکرد من میبردم میآوردم گفت من گفتم که امتحان من شروع شد فهمو ببینید آقا امتحانات داریم ما تو این امتحانات اگه نلغزیدیم بعدش چیزی هم به ما دادن ظرفیت شد داریم ولی اگه تو امتحان بلغزیم اولا چیزی به ما نمیدن یه برو آقا خودت نشون دادی گفت امتحانم شروع شده این یا راست میگه یا دروغ اگه راست بگه بابام اشتباه کرد چرا من اشتباه کنم اگه دروغ هم بگه چرا من حرفش رو گوش کنم گفتم نه آقا جون تو رو نمی کنم. برو رفت من تو بیابان لمی دیگه یقین کردم باید بمیرم به سجده افتادم گفتم خدایا سجده این مزدور ابلیس رو می کردم. منو میبرد سجده تو رو بکنم نمیبری منو به سجده بودم دیدم یکی زد رو شونم پاشو پاشدم گفت چرا میبریمت من معمورم تو رو ببرم و برگردونم. شب بی سه تو احیا گفتم حالا جاشو اشاره کنم یه عرض باز به امام صادق بکنیم بحثم بمونه آی غفاری دیگه ما رو ببرن توی اونوادی انشاءالله گفت فرعون نشسته بود خیلی از یه حرف کیف میکنم فرعون نشسته بود رو, رو تراس کاخش داشت نگاه میکرد دید صندوق رو آب داره میاد گفت کی خودش رو میندازه تو آب این صندوق بگیره بیاره بهش سله میدم 300 نفر از عمال کاخش فرداختن تو آب زدن بالا پایین یکی تونه صندوق بگیره خب بقیه گفتن ما دیگه نتونسم صندوق رو آورد بده به فرعون قضیه از تو موسی بود اومدن سله به این یکی بدن فرعون گفت نه به هر 300 تا بدید گفتن چرا اون دوی تای نوده نهتای به امید به آب زدن امیدشونو ناامید نکن خدایا؟ فرعون فراون بنده سرکیش تو امید و ناامید نمیکن. ما به امیدی در خونه تو میایم. با کمال تزلل اعتراف می کنیم الاهی عبید و بید که به بابک حقیر و که به بابک مسکین و که بابک زلیل و که به بابک ولا یوم کنول فرار من حکومت خدا کجا میتونم برم؟ از در خانه تو به کدوم در خونه برم؟ گر برکنم دل از تو و بر دارم از تو مهر این دل کجا برم و این مهر بر کعب کنم میگن اینو البته سمبولی که داستانی میدونید واقعیت نداره ولی خوب ترسیم کردن وقتی که لیلی داشت میمرد یه نامه‌ای نوشت وسیعت نامه ای به مادرش گفت مادر مجنون میاد اینجا دنبال من اگه اومد این وصیت نامه ای منو بده به مجنون نظامی خوب تو خمسهش اینو به شعر کشیده وقتی مجنون اومد در خونه لیلی فهمید لیلی مرده سرشو به دیوار میزد و مینالید مادر لیلی اومد نامه رو داد به دست مجنون مجنون بار که خوندید لیلی نوشته مجنون از منی که معشوقه تو بودم به تو دارم سفارش و وسیعت میکنم. دل به کسی بستی که با یه تب مرد. به کسی دل ببند که هیچ وقت نمی میره. آشق کسی بشو که همیشه واقعیه. خدایا ما اینو میفهمیم. لذا از اعماق جانمون فریاد برمی آوریم. بکشادری که در گشاینده تویی. بن راهی که راهنماینده توی من دست به هیچ دستگیری ندهم هم که اینان همه فانی هم دو پاینده توی و پاینده تویی جان صدای مکتب تباد امام صادق علیه الصلاه و السلام ایام شهادت باز عرض ادبی کنیم مشابهتی که ائمه به مناسبت‌های مختلف در رابطه‌ی با حضرت زهرا سلام الله ها تو زندگیشون پیش می‌آمد، عجیب دامن می‌زداد. یه قضیه عزت زهرا رو زنده نگه دارن یکی از اصحاب امام صادق چند روزی خدمت آقا نیومد یه روز اومد آقا فرمودن چند روزی شما رو ندیدیم کجا بودید ارض کرد آقا خدا اولادی به ما داده دختری داده من دیگه مشغوله این امور بودم نرسیدم فرمود اسمشو چی گذاشتید ارض کرد آقا جون اسمشو بذاشتم زهرا یا فاطمه حضرت در روایت داره فرمودن فاطمه هر فاطمه که میگفتن با حالت سجده خم میشدن فاطمه فاطمه تا سرشون با حالت سجده به خاک چسبندن بعد با شدن فرمودن سیلی بهش نزن یا خانه امام صادق و آتش زدن زن و بچه سراسیمه اینور ورانور میرفته بعد از اینکه که آتش خاموش شد، آرام شدن حضرت زن و رو، دیدن امام صادق خیلی منقلبن. عرض کردن یابن رسول الله کسی اذیت نشده در این آتش سوزئی. میخواستن شاگرداتونه به متفرق بشن. فرگود من برای اینا گریه نمیکنم. من برای اصر آشورای کربلا گریه.